شنیدم تو سعید به کوه نوردی روید درست است؟ بله. تو هم با ما میای؟ خیلی خوش میگذرد. نمیدانم. نمیدانم می توانم بیایم یا نه. پنجشنبه چه ای داری؟ کار داری؟ نه پنجشنبه کار ندارم. اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم. مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم پس چه کار میکنی؟ من میخواهم بخرم سهشنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است تو هم میایی؟ بله خوب است من هم سهشنبه بعد از ظهر بیکار هستم اسمت را نوشتی نه هنوز الان میروم مینویسم. باشه. باشد.